الحمد لله و کفه و سلامان على عباده الذين استفد موضوعی که بر زنده یشناخت دان همتر که مزیه بود و او یه مرغ زده فضای مجازی و سایبری و چهش هست. اما قبل از اینکه وارد این, این مبحث بشیم، من لازم می‌گویم که کلند نقطه نظر اسلام در رابطه با همه پیشرفت‌ها و همه تجهیزات ها چیه؟ آیا اسلام پیشرفت ها و فناوری ها و اختراعات و اکتشافات جدید و جدیدتر رو میپسنده و اگر میپسنده حد تذیرش اسلام چقدر؟ آیا برای این حد و حدودی قائل شده یا نه؟ چون یک چیز اسم او پیشرفت هست و اسم او ترقیب و اکتشاف هست ما میتونیم او رو کاملا آزاد بگذاریم و لجام گذیخته باشه و اگر برای این حد و حدودی تعریف شده این حد و حدود چی هست انسان یک موجودی هست چند بعدی یک بعد وجودی انسان جسم هست و یک بعد وجودی انسان روح هست بعد وجودی که جسمانیت هست و بود بهینی و حیوانی انسان هست این بود از نظر اسلام کاملا ضعیف و کاملا کم به نسبت اون بود روحانی و ملکوتی انسان یعنی قیمت اصلی انسان و تعریف انسان با اون روحانیت و ملکوتیت هست ربانیت هست به گفته ی عدرت مفتی محمد عثمانی یک فردی داخل خانه خودش نامی داره نشانی داره صاحب ملک و املاکی هست تعلق و دلدادگی هایی با افراد داره این فرد دارای وجاهت فرد شخصیت هست اما فردا صبح تو جامعه اسم این آقا میشه جنازه چرا این تغییر کلی در یک فرد ایجاد میشه؟ شب این آقا با اسمها و القاب گنده شناخته می شد دارای وجاهت و شخصیت دارای ملک و املاک، تعلقات و دوستی ها و دلدادگی ها اما حالا یک مرتبی این قطع افول کرد و اینقدر تنزل پیدا کرد که حتی کسی اسمش رو نمی بره وش میگن جنازه از دیشب تا الان چه تغییری در این آقا آمده چی از این آقا کم شد ثروتش کم شد قدرتش کم شد، قدرت مادی و دنیدی او کم شد یا از جسمانیت او چیزی کم شد آیا اون بینی که گاهی اوقات با جراحی های پلاستیکی مبالغ بسیار هنگفتی رو بر خودش تحمیل می کرد تا این بینی رو قشنگ بکنه این بینی ازش کم شد که اسمه شد جنازه آیا اون خط و خال و اون زیبایی و قشنگی این جسم ازش گرفته شد که اسمه شد جنازه آیا این آقا دست دست دستش رو پاش رو از دست داد که حالا شد جنازه؟ نخیر یک چیز ازش کم شده اون روحش. انسان وقتی روحش از کالبد تنش جدا میشه این تن متعفین میشه این تن اون موقع بهترین افراد و عزیزترین افرادم حاضر نیستند با این حتی یک شب دیگه بگذرونند همون یک شب را هم میگن ببرن ببریم اینو سرخانه حتی همسرش حتی فرزندش اون چیزی که متعلق به این جسم هم بوده گاهی اوقات وحشتناک جلوه میکنه اون دوشک و لهاف و اون متکای او را هم گاهی وقتا صدقه میکنن نه با خاطر این که اینجا صاحبتشون گل کرده فقط به خاطر که وحشتی از این پیدا کردن این انسان وحشتناک شد هر چیز متعلق به او وحشتناک شد حتی حاضر میزن دوستا تحملش بکنن علت چیه که این آقا روحی که قیمت اصلیش بود از دست داد این جسم دیگه حالا بومیاست باد میکنه و اینو باید زیر خروارها خاک مدفون بکنن. این جسم وقتی ارزش داره که با روح باشه حالا انسان هم در بعد جسمانی و هم در وعد روحانی خودش به نحاظ یک نیازهایی داره جسم ما هم نیازی داره روح و روان ما هم نیازی داره و هر یکی از این نیازها کاملا متمایز و زایی یوقات کاملا متغایر هست و متضاد هست اصلن اون نیازهایی که روح ما داره با نیازهای جسم ما زایی یوقات هیچ سنخیت و مجانستی نداره روح ما دگر با همه این تنعم و تناسایی و همه رنگارنگی دنیا ناآشناست روح ما از عالم دیگه است قل روح من امر ربی و این روح یک نیاز جدای داره ما نمیتونیم روح تشنه خودمون رو با غذاهای رنگارنگ سیر بکنیم اتششو رو برطرف بکنیم با آب ما نمیتونیم روح سشنه خودمو رو با تخت و تار حکومت و قدرت اشباع بکنیم این روح اصلا با اینا ناشنار هیچ کدوم اینا رو نمیشنه اینا نیاز جسم اما نیاز روح از جای دیگه هست گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست ماهیان را با یه بوسط جنگ هاست من ماهی دوست دارم یک مدل ماهی خیلی از دیدنش لذت میبرم احساس خوبی دارم اگر ماهی رو از آب بکشم از اون تنگ آب و از اون آکواریوم بکشم بیرون بیارم کنار یک سفره رنگارنگ بشونمش بگم بخور بهترین غذا تو دوست دارم بخورم یک مدت به ماهی کردم ماهی رو راحت بسنده ماهی رو دوست دارم یک ماهی خیلی قشنگه تو اکواریوم رو خونم بکشمت تو اکواریوم بیرون ببرم تو ماشینم کویرم بزنم براش همه اپسون جلو ماشینم بشنشون نشون بدم بگیم کف کن بهترین مدل ماشین الامه استفاده کن ازش چون دوست دارم توی ماهی رو اینجا آوردم ماهی با اینا ناشناه ماهی از آب بکشش بیرون بعد بیا روی یک میز و کرتی یک پست و مقام بزرگی رو جا بده بگو چون دوست دارم من تو رو مدیل عامل آ... شرکت هم میخوام بکنم میخوام حقوق میلیونی بده بدم نجومی بده بدم ماهی ویشاره به تب و تاب میفته و با زبان بیزدبانی برای فریاد میزنه والله من اینا رو نمیخوام امروز روح بشر هم در یک تب و هست این روح بیقرار رو گاهی ما میخوایم با آپارتمان های و چند طبقه تسکین بدیم. گاهی یوما میخوایم با خروارها پول و ثروت و دارایی تسکینش بدیم. گاهی یوما میخوایم این روح رو تبوتاب شو رو میبینیم. میخوایم با صفراهای رنگارنگ آرامش بکنیم. با تخت‌های مجلل آرامش بکنیم. و این روح ما هم این تبوتاب رو داره به ما نشون میده که آقا من این را رو نمیخوام بعد اگه بتونی از ماهی سال کنی چی میخوای ماهی جوابش یکیه من آب من با آب زنده ولی یه انسان کتا تو, تو این فضای مادی و عقلانی بگه این ماهی چقدر کمجنبه است چقدر بیزرفیت است. من همه گنیا رو رفتم به جلوش این میگه من چی میخوام آب میخوام اینم چیزی شد اینم خواستهی شد امروز وقتی به این بشر میگه غذای روحت اینه نیاز روح اینه چون خیلی ساده می بینن این را در اثر فضای مادی و فضای در حقیقت اخلاقی که امروز بر جامعه ما حاکم شده اصلا بابر نمیشه نمی یعنی شه یعنی روح من اینا رو می‌خواد؟ بله روح از خودش نیازهایی داره جسم ما هم از خودش نیازهایی داره ما باید نیازهای هر یکی از اینها رو به جای خود تأمین بکنیم جسم ما نیازهای آثیپی داره نیازهایی در جهت نیازهای جنسی داره نیازهای, نیازهای, نیازهای تفننی و تفریحی داره نیازهای خلاقانه و متفکرانه داره اینا نیازهایی که جسم ما داره اسلام با این نیازها نجنگیده اسلام این نیازهای جسم رو کلا رد نکرده اسلام این نیازهای جسم رو کلا فراموش نکرده و دعوت به رخبانیت نداده دعوت به آزار جسم دعوت به فدا کردن حتی حقوق نفس حتی اسلام گفته ان لنفس که علیه که حقا اینه لدوج که حقا آقا شما میخوای روحانیت رو در خودت روشت بیدی؟ میتونی از حضور نفست و از لذت‌های نفست کم کنی که نفس نشه. اما حق نداری از حقوق نفسیدی کم کنی یک ساعت مقرر جسمت احتیاج به در حقیقت خواب داره به خواب بده جسمت نیاز به خوردن داره مقداری خوردن حق نفس توه سر در عمقی بکنی سرفات بیستی این حق نفسه ده زن، بچه، جامعه، اطرافیان تو به عنوان یک موجود مدنیت تبع و یک موجود اجتماعی نسبت به جامعه و نسبت به اطرافیان خودست یک مسئولیت‌هایی های دارید مسئولیت های, داری. مسئولیت های اونها نسبت به این مسئولیت‌ها تو باید ادای وظیفه بکنی اسلام با رخبانیت مخالفه این که ما کلن نیازهای جسم را چه در زمینه جنسی چه در زمینه عاطفی و... و چه در زمینه تفریحی و چه در زمینه خلاقیت و استکار کلن اینها رو فراموش بکنیم اسلام با این مخالب از طرفی دیگه اسلام با این که ما کلن همه چیز رو به جسم بدیم یعنی جسم بشه مقصد جسم بشه هدف؟ نیازهای جسمی ما بشه کعبه امال با اینم اسلام مخالفه و الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام اینکه انسان کاری غیر از خوردن نداشته باشه نوشیدن نداشته باشه کاری غیر از تناسایی و تنپروری نداشته باشه اسلام با اینم مخالفه اولئک کلعنام بل هم اضل اولئک هم له اینکه انسان فقط به فکر شکم و مقتضیات شکم باشه اینکه انسان فقط در مسلس شوم شهبت چشم و شهبت شکم و شهبت فرج باشه این واقعا انسانیت انسان رو زیر سوال میبره انسانی نیست این ما همه اختراعات و اکتشافات و فناوری های ما وسیلهی بشه برای راحت تلاوی تناسایی هر روز وسایل جدید و جدیدتر اختراع کنیم هر روز با پدیده های جدید و جدیدتر روبرو بشیم و هدف همه این اختراعات و اکتشافات این باشه که ما به تناسایی برسیم به راحت سلیهی برسیم به تنعام برسیم با اینام اسلام مخالفه این رو نوعی بحیمیت اسلام میدونه غلوب در نیازهای جسمی میشه رانی. میشه مادیگری میشه نقص سروری غلوب در نیازهای روحی میشه روحانیت، اون چیزی که اسلام قبول نداره ما بین این دوتا باید ما یک توازن و تعدلی رو برقرار کنیم یعنی از یک طرف نیاز جسم رو به جسم بدیم از یک طرف نیاز روح رو فراموش نکنیم این توازون و تعادل با چی باید برقرار بشه؟ از کجا ما بدونیم که این دو کفه باید برابر باشه از طرفی به نیازهای روح برسیم از طرفی به نیازهای جذب برسیم که هیچ کسه بر کسه دیگه در حقیقت برطری پیدا نکنه هر کدوم سر جای خودش قرار بگیره این توازن و تعادل رو ما با دو چیز میتونیم برقرار کنیم یک عقل دو وقتیه گایی اوقات با عقل میتونیم فکر بکنیم آقا من توازن ما بین خواسته های جسمی و خواسته های روحانی و ملکوتی خودم رو با عقلانیت خودم میام چکار میکنم؟ تعیم میکنم و گایی اوقات هم میتونیم این توازن و تقادن رو با وحی الهی ما تعیم بکنیم کدوم سهی تر هست؟ دوستان من عقل یه قوه بشری هست و اینقدری که اسلام دعوت به تفکر و تفکر داده شاید در هیچ دینی دعوت به تفکر و تفکر داده نشده در بیش از پنجاه آیه قرآن خداوند دعوت به تفکر میده تفکر میده و اسلام دینیه که با حرم و فناوری و رشدی نه تنها مخالف نیست بلکه تحریز میکنه تشویق میکنه بعد اقلانیت خودتون استفاده بکنید در عرصه های مختلف علمی اما عقل مبنای ارزش گذاری خوبی نیست ما نمیتونیم عقل رو مبنای همه خوبی ها قرار بدیم مبنای همه ارزش ها قرار بدیم چون به عقل ما هم یک محدودیت بشری داره چشم ما یک قوه بشریه تا یک حدی می‌بینه از این بیشتر رو می‌خواد ببینی بعد با دوربین ببینی شنوایی قوه بشریه گوش و سمع ما قوه بشریه بیشتر رو می‌خواد بشنوی تا به بلندیو داریم عقل ما یک قوه بشریه، تا یک حدی ازش استفاده میکنیم، دورتر و فراتر رو میگوییم باش سنجین و درک بکنیم، نیازی به دوربین واقعی داریم. هیچ موقع عقل بشر محض، عقل محض بشر نتونسته این توازن، توازن و تعادل رو ما بین خواص های جسمی و خواص های روحی برقرار کنه. یک زمانی جامعه ای ای که هیچی سر جاش نیست همه معادلات داره به هم میخوره یکی که در آشفته میکرد اینا با عقلانیت خودشون میامدن میخواستن جامعه رو توازن و تعادل ایجاز کنن مثلا مثل آقای مانی اشون وقتی دید تو جامعه اون زمان واقعا عجیب شده تسات، فحشا، بحیمیه حیوان سفتی اوج گرفته آمد دعوت به تجریب داد با آقا زندگی مجردی بکنیم همه این فسادهای این جامعه در اثر اینه که این جلس مذکر و معنی خیر و شر از هم جدا نشدن باید این از هم جدا بشن ایک مدتی هم طرف پیدا کرد یک مدتی هم چون یک تفکر نو و جدید بود یک به دنبالش هم افتادن اما بعدها همین باعث شد که یک فساد گستردهی در قالب مزدک تو جامعه وجود بیاد مزدک باز زیغن برعکت کرد اما تو جامعه گوه آقا اون چیزایی که مانی میگفته اشتباه بوده بهرام پادشاه وقتم آمد رو کشت و این چی میگه این مانی با این حرفای خودش جامعه رو کم کم داره به فساد میکشونه. ازدواج اصلا نباشه؟ این غریزه افتیری بشر، غریزه جنسی اصلا تکمیل نشه، اصلا انسان به هیچ خوافه خودش حتی مشروع نرسه و من اولله ممن سبع هواه به غیر خودم من الله اتباه هوا هر جا بد نیست جایی نکوهش شده در قرآن اشتباع هوات که به غیر خودم من الله باشه بلاییت از جانب خدا بر این اشتباه حا نیامده انسان هوا پرخت بشه. هر جا لذتی باشه دنبالش بره اما یک جاهایم هم هست اون لذت هست اون افتباع حوا هست اما نامشروع نیست شریعت اجازه داده من ازش استفاده میکنم. کنم لذت های حلال حق نفس من. من ازش استفاده میکنه. اما آقای مانی نتونست این رو با اون عقلانیت محض خودش ارزش گذاری درستی بکنه و برای اون حد و مرزی درست بکنه لذا به صورت افراتی دعوت داد به مقابله با نیاز فیتری جنسی انسان دعوت به زندگی مجردی دعوت به جدایی زن و مرد کاملا از هم دیگر این تفکر دوامی پیدا نکرد مزده آمد هم مال رو و هم زن رو آزاد اعلام کرد با آقا اینا همه جز, جز چیزهای عمومی هست و هیچ حد و مرزی نداره هر که هر سرخص میتونه استفاده بکنه. اوباد یکی از پادشاهان بسیار خوب و سیاست مدار در این تفکر ملزک باعث شد که این پادشاه هم اون سیاست‌های قشنگ و نابش به سمت افول و انحطاط بیاد و این هم نتونه پادشاهی خوبی رو به دنیا نشون بده یا در زمان‌های بعدی افرادی پیدا شدن مشتهدان دروغینی که با اقلانیت معهش خواستن برعلیه فاپیسمی که دعوت به می‌داد میداد برعلیه او بیستند. پاافیزم در زمانی که استیلای داشت و قدرت سیاسی داشت روحانیت بسیار خطرناکی رو به جامعه داشت تلقین میکرد. اونها نظافت بدن رو منافی با روحانیت می اونها اون میگه به بدن خودشون آهنهایی رو آویزون میکردن و خودشون رو حمل میکردند. و میگه در اون روحانیت راهب، ماکاریوس که در کتاب ما و خسار العالم بین حسات المسلمین آمده شش ماه داخل یک لجنزار زندگی کرد تا پشاهان میشش بزنن و جسمانیت رو تو وجود خودش از بین ببرد عجیب صحنه ای شده بود این کاپیسم با این تهجر و با این دعوت به فنا کردن جسم داشت جامعه رو به ورطه های هلاکت می برد کم کم تو جهان غرب بر علیه این تفکر پاپیست و این رخدانیت مسیحیت حمله یورشی شد. و این حمله و یورش بعدها در غالب روشن تکران و مشتهدانی رونما شد که اونها هم نتونستن بعداً این توادل و تاظن رو حفظ بکنن. آقای پیدا شد به نام کارل مارک که مهمترین ارزش رو به شکم داد و مختزیات شکم. یا آقای فروید پیدا شد که ایشون شهوت رانی بیمهار جنسی رو و استبای بی قید و شرط غرایز جنسی رو در سرلوحه کار خودش قرار داده بود دعوت به طرف این میداد ببینید و الان در زمانه ما میبینیم در بریتانیا در مجلس علنا کسانی که نخبگان هستند کسانی که در رأس یک جامعه هستند کسانی که در خانه ملت کسانی که دارن ختمش یک جامعه رو تعیین میکنن اینها علنن قانون همجنسگرایی رو تفید کردند. براش کف زدن براش حورا زدن از ازدواج مرد با مرد بزن بازن حمایت کردند تو همین در حقیقت قرن بیستون و بیستی کار اینا با عقلانیت خودشون خواستن این توازن و تعادل رو ایجاد کنن از طرف آشبتگی روحی رو دیدن از طرفی فقر معنوی رو دیدن از طرفی ورشکستگی درونی رو دیدن و از طرفی دیگه هم گفتن آقا ما نیازهای جنسی داریم نیازهای جسمی داریم این رو چطور باید برطرف کنیم؟ این توادل، توادل و توادل از کجا باید ایجاد بشه؟ آمدن چیکار کردن؟ یا این کفر رو با رهبانیت سنگین کردن؟ یا اون کفر رو با شهبت بیمهار جنسی؟ سنگین کردن اما نتونستن توازن و تعادل ایجاد کنن اما نبی ما چیکار کرد. چند در صحابه آمدن از یکی از ازواج متحرات سوال کردن رسول و تو خونه میخوابه گفتن بله میخوابه سراحت هم میکنی رسول و چیزی هم میخوره یا سو به سال میگیره روزه پشت سر هم دیگر میگیره گفتن نه اشون غذا هم میخوره با هم غذای باب میلشون ه و رزول فوق ازدواج هم کرده اینا رفتن با خودشون با اقلانیت خودشون گفتن آقا اگر نبی ما این کار رو کرده خود نبی ما پیغمبره ارتباطی با خدا داره که موقع ازدواج هم موقع خوردن هم موقع خوابیدن هم این ارتباط قطع نمیشه اما ما بشرین ما یک بشر بسیار عادی این. ما این کارا رو نمیکنیم یکی از اینا گفت من ازدواج نمیکنم یکی از اینا من دیگه ثوم به وصال میگیرم پول سر هم روزه میگیرم یکی دیگه کن من دیگه نمیخوام. خواهم بعدا رسول باگر صلی سلام اینها رو احضار کرد اینها رو خواست بهشون گفت ببینید و در مقابل این تفکر عقلانی اونها, اونها رو نکوهش کرد اسلامی رو نمی خواست تومبینه یه مربر تفریه تفریه و بازی این یک نیاز پتریه خب آمدن پیش رسول باگر صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه ما قبل از اسلام دو روز فیروز و مهرجان به عنوان روز پایکوبی و جشن روز خوشی ما بوده حالا اسلام آوردیم اسلام یعنی تسلیم در مقابل این دو تا شادی ما با کار بکنیم چه موذی آیا این شادی رو ادامه بدیم یا کلا تعطیل بکنیم ببینید اسلام هیچ موقع دعوت به ترکوب کردن اون نیازهای فطری نمیده یعنی اسلام به میگه نمیگه که حق شادی نداری شادی تو را هدفمند و معنادار میکنه اسلام به نمیگه اصلا نباید خشم داشته باشی خشم چیز خوبیه به جای خود خشم میتونه نمایندگی قحاری خدا در زمین باشه خشم میتونه بغض الله باشه خشم میتونه غیرت دینی باشه خشم میتونه جهاد در راه خدا باشه یکی چیز خوبیه همونطور که تیغ جراحی دکتر هم چیز خوبیه. مادام بیا یکی با نگاه سرسری خودش بره وارد بیمارستان بشه بگه آقا این داروهای شیرینی که میدن این تخت که تو این بیمارستانه این کولرایی که برای مریض‌ها زدن این اکسیجنی که برای مریض‌ها داده این همه خوبه دوای شیرینی حساب خوبه اکسیژن سالمم بشون میدن این هم خوبه تختاج هم خوبه یه چیزی این بیمارستان بده چرا داروهای تلخ میدن چرا اینجا تیغ جرایی دارن؟ اینا دیگه خلاف در حقیقت خوبیه و انسانیه تیغار هم همه رو بریزید بیرون سرسوزن ها و نمیدونم این انسولین ها همه رو بریزید بیرون دوای سلق هم بریزید بیرون این فضای بیمارستان رو با داروهای شیرین و با های نر با اکسیجن های خوب و فضای فرحبخ خوب مزعین کنید به نظر شما این کمال کرده؟ برای همین امام شافعی رحمت الله تعالی میگه نداشتن خشم کمال نیست. امام شافعی رحمت الله تعالی میگه نداشتن خشم مال علاقه. ببخشید دور از جامعه. ما اولاغ هر چی بارش کنن، افسارشو بگیرن هر وقت ببرن، اعتراضی نداره. اصلا براش مهم نیست کدوم برش میبرن، چی بارش میکنن، چی ازش کار میگیرن. خودش برای خودش زندگی نمی کنه، برای دیگرا زندگی میکنه. خشم نداشتن کمالیست و تو کلام الله از نداشتن خشم تو توصیف و تعریف نشده خداوند گفته ولی قابمین کسایی که خشم رو فرو می کشن. کسایی که خشم نفسانی ندارن کسایی که برای نفس خودشون ناراحت نمیشن اما یک کسایی هستن که برای خدا ناراحت میشن خیلی خوبه ببینید اسلام به اون فسرت های بشری اونها رو هیچ موقع ازاله نکرد بلکه اونها رو چگار کرد؟ اعماله کرد. اگر شما نگاه به پاپیسم بکنید قبل از اون این انقلاب کبیر صنعتی و و رنسانسی که در اونجا شکل گرفت قبل از اون یک روحانیتی بود که فقط میگفت نکنید. نکنید. نکنید. خب انسان هم یک موجود عملگراه هست. خب نکنم چیکار کنم؟ من کجا پشت میز نشستم، بابام بهم میگه نکن. خب من میگه نکنید. نک آقا من 5 بار شش بار که بگین نکو آقا میگه بابا چکار کنم پس کن؟ یعنی در فرهنگ روحانیت و پاپیسم زمان فقط این بود آقا نکن نکش نکور اگر این کارو بکنیم به روحانیتت لطمه میخوره اگر این کارو بکنی جناتو از دست میدی اگر این کار آقا من این رو نمیکنم اینو جنبه طالب داره اگر نگاه به اون عقاید و اون الهیات اونها هم بکنیم خدا رو یک موجودی معرفی میکردن که خیلی چیزها نداره، فلان نداره، فلان, نداره، فلان نداره، فلان نداره، فلان نداره. خب خدا چی داره؟ اما نگاه به اسلام میکنی، اسلام جنبه صالبه برای ذات خدا کم بیان میکنه. میگه لیست کمیتیه شی. برای خدا در ذات و صفات مثل مانند نیست. ولم يک الله كفو و احد نکرده تحت نافی واقع شده فایده عموم میده خدا همتا و مثلی ندارد. وإن جنب اما وقتی میخوان جنبی بيه ایجابی بیان کنن خدا رو معرفی کنن میگه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البار المصبر الواجد الماجد الاحد الصمد الاظهر والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صفات به اسلام جنبه صالبش بیشتر اما تو اون الهیات تحریف شده و تو اون اقاعد متأثر از فرهنگ های جنبه جمعه صالبی تو اعتقادات غالب بود همونطور در بعد عمل هم اون بعد صالب در اون رو غالب بود نکنید نکنید نکنید ببینید اسلام اینو ندار آمدن گفتن ما در روز تفریح داریم چگار کنیم؟ فهم برگو حق نداری تفریح کنید اگه شفری کنید جنت بی جنت نه تفکر نبود برید تو قارا بشینید برید نمیدونم روحبانیت خیار بگارید نه قیام برپر بود من دوتا شادی دیگه به جای این دو شادی برای شما معرفی می کنم شادی عید فیتر و شادی عید فرگان شادی های عدف من شادی های معنادار یک ماه بندگی یک ماه مبارزه با نفس یک ماه تمرین تقوا حالا بعد از یک ماه خودت بر خودت جشن تو تونستی یک ماه بر خدا زندگی کنی حالا جشن قشنگی همه اشتاق و دلدادگان و خدا در یک محلی مسلاحی جمع میشد با های قشنگ با عطر زدن با یک تحنه زیبا سلامن سلاما با لبیکی که بر زبانهاشون هست رو به هم تبریک میگم قشنگ شد معنادار شد هدفمند شد این قربانی که میرسه یک رکن اسلام حج داره عدا میشه یک ازده تونستان قربانی در رای خدا بکنن تشبه به ابراهیم کنن سنت ابراهیمی زنده کنن فرزندان توحید تونستن چاقو به دست بگیرن و اگر نمیتونن در حد امام المتوکلین چاقو به اون لخت جگر و پاره تنشون بکشن لاغل یک تسبح کردن یک گوستن دیرو که قیمتش 300 تومن 400 تومن هست برای خدا زیب کردن و معنای این حرکت رمزاجی و نمادین اینه که خدایا منم مثل ابراهیم اگر نیاز باشه همه احساسات عواطف درونم رو به پای محبت تو میریزم حرکت قشنگی شد حالا برای خودت برو جشن بگی از عمل خودش اسلام به ما جشن رو یاد داده اسلام گفته تفریح کن اما چطوریه تفریح, تفریح نا سالم نباشه برای همین در روایات میاد رسول پاک علیه الصلاه و السلام فرمودند ولوا ولعبوا فإني اکره ان یرى فی دین سو مگر الضحک تفریح شادی بکنید من دوست ندارم تو دین شما به نظر بیاد اسلام دین آسانیه اسلام دین یسره یا رسول الله علیه السلام فرمودن کل شیء من لحب دنیا باطل الا ثلاثه از هر نوع بازی دنیا همه باطل ان نظر ما جز چند چیز یک تیراندازی و مهارت‌های رزمی این تفریح یک بازیه اما قشنگه هدفمند و معناداره برای تکمیل یک امر الله منافاتی با مقصد حیات تو نداره منافاتی با کمال انسانی تو نداره بلکه تو رو ضعیف میکنه و عدلهم مصطفات من قله اسلام گفته سوارکاری کن سوارکار خوبی باش رونده خوبی باش اسلام گفته ملاعبت و ملاطفت با همسر جزء لغو دنیاییه می تونی با همسرت خوشو کنی می با همسرت بشینی و حرف قشنگ بزنی این جزء لحظه دنیا نیست این جزء لغویات نیست اسلام دعوتی به شنو داده با الان ما در دنیا داریم میبینیم انواع المپیک های مختلف از بوکس آمریکایی گرفته تا نمیدونم داگ گرفته تا نمیدونم چند وقته پیش مسابقه در ژاپن برگزار شده بود که هر مردی همسرش رو بعد کولش سوار میگرد یک فاصله رو طی می یک از دوستان میخیم میگو ا اگر فردا این مسابقه ثبت بشه و وجود الملمپیات بشه اسمش رو شما چی بذارن؟ مسابقه شوهر دوانی نه استودیکتی ای نداره دیگه از قدیم میگفتن گفتن از و عبامون علی النساء. حالا این آمدن خلاف فطرت از رجال حمالون لن چه قلعه هم پیگیه آمریکایی آنبیکایی نمیدونم این چیزایی دیگه چیه اسمش یک مدل بخشت دیگه است که اصلا باید طرف بگیره نقاط کنه بزنه دیگه اطمان یا بکشه یا نیمه جان کنه کشتی کشت اینا یه چی که الان سردمدار در حقیقت صلح جهانی و سردمدار دفاع از حقوق بشر و سردمدار و پیش قرابل کسی که دم از مدیریت جهانی میزنه آقای ترام خودش رشده ورزشی چیه؟ کشتی کج این دنیا رو با کشتی کجیش رو بری کنه خب این اسلام تفریح رو قبول داره خود رسول باقر علیه السلام به نفس نفیس خودشون و ام المؤمنین سیدت عائشه صدیقه را گویا که اون غلام ها در صحن مسجد داشتن با هم دیگر شمشیر بازی میکردن بازی های رسمی میکردن خود رسول باقر به نفس نفیس میثاد نگاه میکرد ام المؤمنین سیدت عائشه صدیقه را میگذاشت که نگاه کنه خود رسول باقر علیه السلام به نفس نفیس خودشون دور از انظار عمومی از سفر جهاد برمیگردند جهاد جای خود اما جهاد رفتن معنیش این نیست که دیگه معاشره سالم نداشته باشم جهاد رفتم تفریح نداشته باشم جهاد رفتم ملاطفت و ملاعبت با همسر نداشته باشم از سفر جهاد برمیگرده خب لشکری که جلوتر میره و دور از انظار عمومی به عم امل مؤمنین سیدت نهایشه صدیقه حبیبه خودش میگه آیسه مسابقه دو, دو دوانی میدی ولی یا با همسر خودش مسابقه دو دوانی میده خیلی ساله و قصن اسلامه به نیازهای سیتری ما اسلام پشت نکرده اسلام دینیه که به لبخند تو مزد میده لبخند تو را عبادت معرفی میکنه تو و که فیوز حقیق صدقه آقا بردر مسلمان تو دیدی یک لبخند بذار تمام صدقه بردر نوشته شد شد کدوم دین دیدی به لبخند عجر بده کدوم دین دیدی که به ملاعبت همسر و بازی با همسر او رو جزء لحم دنیا و امور لایعنی دنیا او رو جلوه نده کدوم دین دیدی که دعوت بده به تفریح حتی به شادی حتی رادح قلوباتم طاع فصاع قلبای خودتونم راحت قرار سنید جای وقتها قلوباتونم شاد کنید یکم اشکال نداره خوشطبعی کنید اما اسلام میگه خنده با غفلت نکن خنده به قیمت دلشکنی مسلمان خنده به قیمت اینکه گریه رو به چشمای دیگران بیاری خنده به قیمتی به کرامت این انسانی خود رو از دست بدی اهل تمسخر و اهل در حقیقت هرزگی بشی به این قیمت خنده رو اسلام نمیپذیره ببینید اسلام ما بین این دو تا تفکر یعنی کی روحانیت و ما بین حضرت عمر رو ما همه خشن میدونیم نه میگیم ایشون اشد بهم فی امر الله عمر اما خود عمر میدونه گاهی اوقات خوشطبعی میگه و خود عمر رضی الله تعالی گاهی اوقات میفرمود که لقاء الاخوان جلاء الاحزان دو تا برادر دینی برن همدیگه رو ببینن و هم الاغات کنن با هم خوشتبعی کنن اینا باعث بشه قماه دلشون سباک بشه اسلام با این معاشره قسنگ بخاله بینید در حال اینجا صحبت از این بود که ما میتونیم چطور توازن و تعادل ما بین این دوتا نیاز خودمون ایجاز کنیم یکی نیازهای چی بود شما هم جواب بزید خوابتون نبره یکی نیاز جسمی یکی نیاز روحی و معنوی کاری بکنیم هر دوتا از خود گفتیم این توازن و تعدل رو با دو چیز میتونیم ایجاد کنیم یک آه. دو و ما عقل رو خدمت دوستان گفتیم سردمداران عقل گرایی مثل مزدک مثل مانی و مثل چنده بردیگه مثال زدیم چی بود؟ فراید. مثل چی کارل مارک اینا, اینا کسایی بودن که آمده نتونستن این توازن رو و این تعدل رو, رو ایجاد کنن و الان هم پارلمان ها و مجلس های در حقیقت اروپایی نمیتونه این توازن رو ایجاد کنه به کجا رسیدن؟ به کجا؟ دارن علنن تو مجلس بریتانیا نخبه ها و فریخته هاشون قانون چی رو دارن تصریم میکنن؟ جنس گرایی عجیب شده و الان طرح و دارن در دستور کار که ازدواج با محارم رو هم به گفته حضرت و امطقی عثمانی در کتاب تجددگرایی و عقلگرایی نکته رو آوردن که الان در دستور کارتون که یه رای برای اینا پیدا کند انا یعذ بالله. مثل فرقه باطنیه که سردمدار این فرقه با عقلانیت خودش میگه آقا میوه باغ تو خودت بخوری بهتر یا بری دیگران بخورن. انا یعذ بالله. یعنی محرم داخل خونه‌ی تو بدیم دیگران را ازش استفاده جنسی بکنن خودت مقدمتری سردمدار فرقه باطنیه در قرن بیستو اقلانیت انسان رو به اینجا میبره اقلانیت تنها نمیتونه برای انسان مئیار همه خوبی ها و همه ارزش ها باشه. نهایتا انسان با این شکست میکنه و نمیتونه اون توازن و تعادل رو ایجاد بکنه اسلام از طرفی میگه شما اهل اختراع باشید اهل استشاق باشید اهل فناوری باشید من از سیرت و از قران چند نمونه رو مثال میزنم قرآن کسانی رو که تونستن قدرت‌های کیهانی و قدرت‌های در حقیقت مادی دنیا رو تسخیر کنن و کسانی که اهل قدرت بودن و کسانی که اهل سلطنت و زرنگی بودند اونارو داره وقت میکنه اما در عین حال که اینها اهل قدرت بودند و اهل تسخیر قدرت های ماورای بشری بودند در عین حال آبد بودند زاهد بودند متقی بودند خدا ترس بودند فکر آخرت داشتند و از این قدرت ها در جهت نفع بشریت استفاده میکردند قرآن چند نمونه مثال میزنه تو قرآن از این شخصیت‌ها چیه؟ سلیمان دیگه ذلقرنی اینا کسایی که در کلام الله ازشون یاد میشه به عنوان کسایی که اهل قدرت بودن در کنار قدرت اینا یک خصوصیات دیگه یه هم داشته برای همین اسلام تنها علم رو برای علم نمیخواست اقلانیت رو تنها برای اقلانیت نمیخواست اسلام تنها پیشرفت رو برای پیشرفت نمیخواد اسلام تنها ترقی مادی رو برای ترقی مادی نمیپسنده این رو شهادت علمی می دانه. اسلام اسلامی رو چی میدونه شهادت علمی میذونه این کمال می نیست بلکه اگر نگاه بکنید امروز قبور ریاضیدان ها قبور نجوم شناس ها قبور مردانی که در اسلام خوش درخشیدند، رو قبورشو نوشته ریاضیدان و بگید آره نجوم شناس و آره برید رو قبورشو نوشته بوزجانی برید سر بزنید همین نیلا برید به نیشابور سر بزنید قبور ریاضیدان ها و قبور در حقیقت نجوم شناس های ما رو ببینید نیست رو قبراشون تنها ننویشه ریاضیدان تنها ننویشه نجوم شناس اینها در عین حال که ریاضیدان بودند فیزیک دان بودند تحصیل کرده بودند اهل اختراع و اکتشاف بودن اما اختراع و اکتشاف رو برای یک هدف میخواستن خود اختراع و اکتشاف هدف نیست تو اسلام اختراع و اکتشاف هدف دگه عوضو نبر دیگه شما همکاری بکنید من با دهن روزه دارم میگم اینا رو خدا میدونه بعد از این بیان تشنگی من چطور بشه خدا خودش مگه نصرت بکنه اسلام اخترا و اکتشاف رو پرستش نمیکنه اخترا و اکتساب رو هدف معرفی نمیکنه اخترا و اکتشاف رو, رو وسیله ای برای رسیدن به هدف معرفی میکنه خیلی زیباست نگاهی که نبی ما از اختراعات و اکتشافات بیان میکنه یک نگاه بسیار زیبایی هست تو قرآن برید برق بزنید هو خلق لكم ما فی الارض جميعا تمام چیزایی که تو زمینه برای شما لکم لام برای نفعه برای نفع شماست اما من برای کیم؟ منم برای اینام خیلی بعد ماشینم مال من باشه منم مالی باشم ماشین باشه خیلی بعد شغل و کار من مال من باشه منم مال او باشه پول مال من باشه منم مال پول باشه خیلی بعده پول مال منه من که مال پول نیستم که امروز یک دور و تسلسل تو زندگی ها آمده از طرف سوال میکنی چرا میخوری بگی برای که زندگی کنم خو برای چیز زندگی میکنی برای که بخورم تا جوانه جوانیش تو تمام نشاط جوانی رو فدای پول میکنه پیر که میشه با پول دنبال جوانی میگرده این دکتر اون کلیمی پیش این متخصه شما رو به خدا اکرار بکن جوانی به من برگرده بگی پیر که تمام جوانیش تو فدای پول کرده و رفت پیش دکتر با آقای دکتر دستم میلنزه آقای دکتر نمیتونم دستم اون کنم باید پیریه من خوب نمیبینه باید پیریه سو حازمه دارم میدم هم خرابه گفت از پیریه گفت در حقیقت احساب و روان مشکل داره یه خورده ای فراموشی آزایمر گرزم گفت از پیریه دار زفتر دکتر به چه خبره هسته هرچی بده میگه میگه از پیریه گفت احساب و خرابت از پیریه حالا جامعه که امروز ما داریم اینطوریه تا جوانان دنبال پولن به پول که میرسن دنبال جوانیه. اگه خودت هم برای چی دارم زندگی می کنم. آدم خوب پول به دست بیاره زندگی کنه نه اینکه زندگی رو فدای پول کنه. گاهی وقتا بعضی زندگی رو قابل سرخمه باید بری پیش طرف بگی تو رو به خدا بس کن. یکم آرو چی رو میخوای پس کنی؟ کجا میخوای برسی؟ کی میخوای پولا رو بخوری؟ آقای بابک زنجانی همین رو بگی چی سون تا آخر عمرت بگی تو خورد. به منم نذار. هم ثویاسم نده به اولفقی هم نده به کمیته امدادم نده, نده. نوش جان خودش، بسسه بخور اما میگه حلم مزید حلم مزید این آقا آخر و آخر میمینی به کجا سر از کجا در میاره از جایی که خودش هم نمیتونه از پولش استفاده بکنه این بشر قابل ترحمه باید بر این بشر بسینی گریه کنی بر این بشری که نمیدونه برای چی زندگی میکنه خدا بیام هم نام دعوت به علم میده اسطوره علم اسطوره قدرت معرفی میکنه در کنار قدرت توازنی با چی هم داره هم داره سلیمان اگر قدرت داره جون طرف دوعا هم داره رببع عضو ان ااشن عممت کللبان ت عليه یا بعد والده یابان عمل و فال و اب تنی بر رحمت کف عیواده که اگر قدرت داره سلطه داره از این طرف میگه تاظ من فضاضل رببیلی بنی اشکر و امااسفر هفهم بلگره اگر قدرتی داره قدرتش داره برای ساعت و داره برای نفع و استفاده میشه. قدرت معناداره قدرت هدفمنده. اسلام دعوت به در حقیقت اختراع و اقتصاف میده اگر به سیرت رسول باگ علیه السلام و مراجعه بکنیم در سیرت رسول باگ این چیزا بسیار پره مثلا حافظ ابن کسید در البدایه و نهایه میگه دو صحابه یکی از اونها قروبت ابن هست رسول باگ اینها رو به شام سوریه الان می بلای یاد گرفتن یک آلیاز مخصوص آهن اینو برن و در این صنعت فلز و صنعت در حقیقت آهن اینا تبخر حاصل بکنم بیان تو کشورهای اسلامی به نفع اسلام و مسلمی ازش استفاده بکنم. یا فردی میاد رسول باک میگه میخواد تکدیگری کنه میخواد دست راست کنه رسول باک معاملات سالمین جایگزین بهش میده رسول باک میگه تو خونه چی داری این زیرانداز می‌ذارم یک کاسه برو بروید میاره اینارو رسول باک در معرض عموم می‌گذاره مزایده میکنه میگه کی از اینا رو بخره قیمت ببرید قیمت ببرید بالا یکی ناگهان قیمتش میره بالاتر میگه مال شما پول بده پول میگیره میده بهش میگه براد چی بخر خبر بخر بر برای خودی دیزم کسی بکن برو با امرار و معاش سالم بکن ببینید اسلام دعوت به کار داده اسلام دعوت به در قضبه سائف نبی ما از منجنیق استفاده کرد که تو خانه امروزه نبی ما در قضبه سائف از دبابه استفاده کرد که تنک امروزه نبی ما از این اختراعات و اکتشافات و اقتصاد اقتصاد پویا حمایت کرد نبی ما به خاطر این که از واردات بی و پدت شدن اقتصاد داخلی جلوگیری بکنه از خرید شمشیر و آهنالات غیر مسلمان ها من کرد گفت که سر نداره واردات اینا داشته باشه الان ما تو کشور خودمون واردات هرچی داریم حتی خواهد گربه خواهد برای پرداش گربه سفال شهرهایی که در ایغز نمونه بودن در سفال اینا موندن با چین چی کنن زفر هم که آخیران دیگه انشالله در راهه و های چین که دیگه خدا میدونه بعد با زراعت ما چکار کنه حلوان سر زمین کاشته میشه طرف میاد میگه آقا مفتی ببرید اینا اصلا نه بار کردن داره نه ارزش فرستادن به استان دیگه ای داره همینجا سر زمین اینا یک جوری بشه لنگ بشه اصلا بره به زمین نبینم اینا رو حالا بیشار کلی زحمت کشیدن ها بی نبی ما صلی الله علیه و سالشو که اقتصاد مقاومتی که باید این نمود عملی پیدا کنه ان اما نبی ما اون زمانی کارا رو کرد نبی ما از اون چیزا استفاده کرد ببینید ما که فناوری میگیم پیشرفت میگیم اختراع میگیم ما بعد قبول کنیم غرب از ما جلو زده همه رقابته چون را جلو زدن دلیل برای نیست که علم در انحصار اونا هست مگه ما جلو زده بودیم یک زمانی از اونا بگیر زده بودیم یا نه مگر اونها ها ریزخار صفری ما در اندلوس نبودن مگر اونها اگر مبانی شیمی رو گرفتن از جابر بن حیان ما نگرفتن مگر اونها اگر مبانی جبر و مسلسات رو گرفتن از خارسمی ما نگرفتن مگر اونا اگر دانش مسلسات گرفتن از بطانی ما نگرفتن مکه دا گردیم چون ابو ریحان بیرونی پدر علم شیمی بوده پس علم شیمی یک علم اسلامیه ربطیم هم به قرب نداره این چیز انحصاری نیست این مثل توفیت ایک، توی ایک میدانی یک زمان میافته تو میدان اونا یک زمان میافته تو میدانه ما ما باید بتونیم این توازن رو ایجاد کنیم علامه اقبال رحمت الله تعالی به طرف همین دعوت میده یکی از منتقدان شدید غرب علامه اقبال میگه شرق حق را دید و عالم را ندید شرق حق را دید و عالم را ندید ما شرقی ها حق رو دیدیم قرآن رو دیدیم حدیث رو دیدیم سجده رو دیدیم ساعت را دیدیم منگیر رو دیدیم سیو ندیدیم عالم رو با اکثرش با اکتشافش همه رو گذاشتیم به ساق نسیان غرب عالم را دید و اندروی خدید اما غربم دنیا را دید همه چیکار که هست؟ کلا خودش رو به دنیا دار اینم بده این با توازن ایجاد بشه جایی دیگه علام اقبال میگه غربیان را زیرکی تازه حیات شرقیان را ایش رازه کائنات زیرکی از عصد گردت حق شناس کار عشق از زیرکی محکم افاس عصد چون با زیرکی هم برسود عصد با زیرکی چون هم برسود نقص بند عالم دیگر شود خیز و نقش دیگر نقص عالم دیگر بنه عصد را با زیرکی آمین ده ما امروز باید یک کار بکنیم بریم دانشگاه اما جزا مخلاقی رو بیاریم انحراف عقیدتیشونو از دانشگاه پس بیاریم بریم دانشگاه ها چیو میخوایم از اونجا بیاریم اله حکمت و دالت المؤمن بریم گمشده بیاریم بریم فیزیکدان بشیم بریم شیمیدان بشیم بریم اقتصاددان بشیم بریم سیاست مدار بشیم اما میریم دانشگاه برمیگردیم میان با چی برمیگردیم من گفتم اقبال رفت دانشگاه های غربی برگشت آمد اقبال شد. دانشگاه ما تو کشورهای اسلامی میرن دانشگاه عموما اقبال نمیشن که بمانه اتبار میشن چی میشن؟ <تصفيق> یا اقبال میشن یا ادبار میشن کاش اقبال میشن اقبال الان سرش ینگه چند کشور یک شخصیت جهانی شده ما ایرانی ها میگیم اکثر اشعارش پارسیه پس معلومه که به ایران گرایش داشته مال ماسته کنگره تو میگیریم برای اقبال میگن اقبال رو انحصار یعنی مصادره کنیم برای خودمون پاکستانی ها میگن اقبال خب لاهوری دنبالش اقبال لاهوری مال ماست هندی ها میگن نه آقا این اصلش مال ما بوده اصلا مال هندستان بوده چند تا که باز غربی ها میگن ناقا نا با وجودی که منتقد غربم هست غربی ها میگه تحصیل کرده تو دانشگاه ما تو دانشگاهی ما سیاست خون تو دانشگاهی ما اقتصاد خون مال سر جنگه اما یک تحصیل کرده ما عموماً خدا مااف بکنه خوب همه جا هست. مثل شما ازجزدانی که تو ماه رمضان تو تعطیلات و قدرتون آمده استکاف کنه تو یک تنگر علمی با یک همفی و همدیشی حوزه و دانشگاه بتونیم به یک تعالی و ترقی برسیم خوب هر جا هست ما همه رو انکار نمیکنیم. اما امروز عموماً از دانشگاههایی ما که فارغتحثیل میاد بیرون تا یک چیزی میگه یک برخوردی میکنه بابای میگه بله به دایش شده از ماسک بر ماسک یعنی توی خانه هفت نفر هشت نفر اونو به رسمیت نمیشونستم مثل توپی پاس میدم برم این بعد از اول معلوم بود بچه از قدیم گفتم به کی میره این به دایش رفته از امونا باز مادر ناراحت میشه میگه نه چرا به دایش بره سر و حیکلشو نگاه کرد این امو کچیکه به اموش آخر به توابق میرزن میگن آقا نه نه به این رفته نه به این ما نمیدونی به چی رفته آخر آخر این آقای هیره بفتن. که هیچ کی شخصیت و حوییت اینو به رسمت نمیشه سهت تو خونه چرا اینطوری؟ خوبه ما از فضای رشد علمی اختراع و اکتشاف غرب استفاده کنیم مثل علامه ندوی در دانشگاه آکسفورت بیان میکنه سخنرانی میکنه خب یک نفری که تا آخر عمرش یک دونه خانه ملکی نداشته در عوج زهدو و همه زندگیش رو وقتی اله کلمت الله کرده کتاب نوشته مادا خسان العالم بین حداات مسلمین که کل فرق اسلامی ازش استقبال کردن تو دانشگاه آف سپورت بیانی میکنه عقل تمام غربی ها متحیر میشه چرفای قشنگی این قشنگه دانشجوی ما چشم بسته تحتیل کرده ما چشم بسته سراغ اینترنت نره این واقعا سواد قدیم میگفتن با سواد به چی میگفتن با سواد خوندن نوشتن بلد باشه یکم دنیا پیشرفت کرد گفت راه با سواد کسی که به اه... نمی دونم رایانه و اینا تسلط داشته باشه و زبان انگلیسی بلد باشه اگر این دو کار رو بلد نباشه این با سواد نیست حالا یونسکو خودش میگه با سواد خیلی مفهوم وسیعتری داره سواد در های مختلف سواد معاشرتی باید داشته باشه سواد در حقیقت اخلاق و آتفی سواد تعامل و همزیستی سواد اقتصادی سواد رسانهی و تستانگاه وقتا میگه دانشجو ایما میگه یک مطلب از یک جا سرچ کرده کپی کرده میاده دیرون میگه ما آقا این که نشخار اندیشه این که اندیشه نیستی تولید اندیشه نیست از منبعش گذاشت اینترنت گرفتم یا الله فقط میگه از جبریل امین همیلون داغ و داغ گرفته آورده اینقدر سباد رسانه مپاینه اینقدر ما دوچار فقر فرهنگیم که آقا سرچ میکنه یک چیزی یک مطلبی آقا تو این هم هر مطلبی گذاشته از هر جا گذاشته یوسف و رجل مؤمنه و کافر کافره صبح مسلمان شب کافر شب کافر صبح مسلمان خودشم نمیرون خوبیتش چیه؟ این چی رو میرسنه که ثواد ای جامعه ما چیه؟ خیلی پایینه تو حرف میزنه میگه دبلیو دبلیو دبلیو داد داد آقا خدمت شما هسته بکن آروم تو خودت دیکم تولید اندیشه کن تو خودت یکم فکر به جامعه بده بونگای اقلانیت باش نشخار اندیشه نکن برحال صحبت من این بود که ما باید این توازن رو ایجاز کنیم و عقل نمیتونه مبنای این توازن باشه عقل اگر مبنای این توازن باشه خیلی راحت طرف میبینی باید توجیه عقلانی هر رفتار خودش رو توجیه میگنه آقای وینسپون چرچل بعد از هیروشیما و ناکازاکی بهش گفتن چیکار کردی این فجایع اخلاقی این فجایع نظامی این فجایع ضد انسانی از گرگ درنده این برروی اومد خوشی همه انسان رو اطلاعام کردی و نسل کشی کردی حتی در های بعد از جنگ جهانی هم اثرات مخرب هنوز اون جامعه است چیکار کردی یک توجیه اقلانی کردی رو تو کتاباشون هم هست چی گفت و اگه این کار رو نمیکردن جنگ به درازان میکشید و اگر جنگ به درازان فاستا فیصله کنم تمام شدید حوصله هم سر رفته بود مثل کسی که شفرش بازی میکنه آخر آخر کم میاره میزنه زیر مورا و آخر میگه چرا اینطوری کردیم میگه وقت قضاست حالا خودش بلد نیست نه <تصحیح> کار کردی آقای چرچیلی چه چی چیکاری بود تو کردی گرگی گرسله میکار و نمیکنه گرگم که به یک گله میداره دفتارو میداره تو چند میلیون انسان رو دریدی؟ به چه قیمت؟ علم، فناوری و تکنولوژی مال پیشرفت بود نه مال درندگی نه مال سلاحای کشتار جمعی نه مال منبعتم نه مال در حقیقت پرک کشیدن تو حوضه های فردی و جهان نه مال استثمار و استعمار نه مال خود خودکامگی تو که با این علم وسیله ایرعاب و وسیله نامنی روانی و جانی برای بسریت درست کردی چکار کردی؟ یک کلمه جواب داد و ما من این کار رو نمی کردم جنگ به درازا میکشید اگر جنگ به درازا میکشید یک میلیون سرباز آمریکایی کشته می شد دیست هزار سرباز طرف مقابل کشته می شد الان در این دفتر جلوی این امرو بگیرم به طرق اونا مردن مردن دید. این اقله عقل مست اگر مبنای در حقیقت ارزش گذاری و حلت و حرمت قرار بگیره هرگز نمیتونه در حقیقت همه خوبی ها رو سکمیل کنه ببینید ما باید با این پیشرفت ها کار کنیم پیشرفت مال منه گفتم ولی ما مال اینا نیستیم به عنوان آخرین مطلب نبی ما میگه اِنَّدْ دُنیا خلقت لكم و لَكُمْ وَأَنْتُمْ وَاِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِ شیز حرمت نبی رو دنیا برای شما خلق شده اما شما برای کی خلق شدی؟ اخرار. نبی ما میگه مالی و دنیا ما انا ودنیا الا انما کراکبن استدل تحت شجره ثم راح وترک. مثال من و دنیا مثل یک سوارکاریه سوار برای ایک چیزی شده؟ زیر یک سایی استراحتی میکنه بعد میکنه و میره دنبال کارش. من دنیا رو مثل یک مرکب و سواری میخوام دنیا هدف نیست اسباب دنیا تکنولوژی دنیا نوآوری دنیا پیشرفت دنیا اسباب برای رسیدن به مقصد مقصد چیزی دیگه است مقصد رانی نیست لذت جویی نیست مقصد خودکامگی و تسلط بر دنیا نیست مقصد این که من دیگران رو زیر یوغ خودم بکسم نیست استثمار و استعمار کنم نیست مقصد پیشرفت ها اینه که من از اینا وسیله برای آخرت خودم درست کنم کمال انسانی خودم درست کنم خب یکی از این پیشرفت ها که در عصر حاضر خیلی واقعاً رو به رشد و تزاید هست در واقع ایجاد شبکه های جهانی اینترنت یکی از اون انقلاب های اسی در پیشرفت بنیادین در طول تاریخ بشر بوده که این اینترنت هم بایدها ها و نبایدهایی داره. این اینترنت هم در حقیقت فرصتها و تحدیدهایی داره. این اینترنت هم ما باید با اون دیدی که اسلام به ما معرفی کرده ازش استفاده بکنیم. حالا چطور انشاءالله؟ چطور؟ انشاءالله جلسه آینده الان که کلیت قضیه رو گفتیم یعنی چی بود کلیت قضیه؟ بگید اصلا پیشرفت خوب هست یا نیست؟ اگه خوبه در چه حد خوبه؟ و ما باید برای پیشرفت ها حد و مرز قائل بشیم و بتونیم یک توازنی ما بینه چی و چی ایجاد کنیم؟ روح و جسم ما ایجاد بکنیم این توازن با عقل بهتر حاصل میشه یا با وحی با وحی بهتر حاصل میشه خب اینا صحبت های این جلسه ما بود انشالله در رابطه با یکی از این پیشرفت های افر حاضر که اینترنت هست و فضای مجازی هست فضای سایبری هست انشالله اگر حیات و بقایی بود باز فردا در خدمت دوستان خواهیم بود با اخر دوان از انحمدالله رو بشن.